حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک همان دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اشما که دل به پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسمردا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسمردا یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود یه روز یه مملکتی بود که توش دخترا اگه روسریشون عقب بود یا مانتوشون کوتاه بود اونا رو دستگیر میکردن تو همون مملکت یا عالم آدم تو زندان بودن چون میگفتند حرفای رهبر کشور رو قبول نداری چون شاکی بودن از اینکه تو مملکتشون انقدر دزدی میشه اختلاس میشه دکل گم میشه، بانک خالی میشه، زورگیری میشه، تجاوز میشه مردم یمن و بحرین و لبنان و فلسطین به اهالی خود اون کشور ترجیح داده میشه اما رهبر برخورد نمیکنه. رهبر نمیاد به این درد و رسیدگی کنه اما عزیزای گلم فکر میکنی در حین همه این اتفاقا رهبر اون مملکت شکار میکرد؟ رهبر به نظر خودش خیلی کارای مهم میکرد یکی از مهمترین اونا هم این بود که هی بشینه به جوونای غربی نامه بنویسه و خودشو به عنوان رهبر دنیای اسلام به اونا معرفی کنه به جوونای غربی بگه که داعشیا اصلا مسلمون نیستن ما که انقدر مهربون و با مسلمونی ما که کسی رو به خاطر عقیدش تو زندان نمیندازیم ما که پوشش اجباری به سر و کلی کسی نمیکشیم ما که مردممون به خاطر رهبری ما دارن تو اوج رفاه و آرامش و ثروت زندگی میکنن ما خوبیم اونا بدن حالا کسی نمیدونه جوونای غربی اصلا نامه رو دیدن یا نه خوندن یا نه جوابی بهش دادن یا نه؟ اما مردم اون مملکت خوب بلدن جواب اون نامه رو بدن چون حرفایی که توی اون نامه بود ترجمهش میشد زندگی واقعی اون مردم اون نامه به همون اندازه واقعی بود که زندگی اون مردم توی رفاه و امنیت و آرامش بود آره بچه های گلم بالا رفتیم ماست بود؟ پایین اومدیم دوغ بود ای کاش ای کاش این قصه که براتون گفتم از اول تا آخرش دروغ بود و اما سلام علیکم و اما سلام علیکم خوبین خوشین چه خبران خوش میگذره ایمن فرشت و منافی هم اینجا راژیو پسفرده شماره 941 امروز تشنبه دهم آذر ماه 1394 و اما حالا برو بریم رادیوی پسفرداد دیگه خدایی واقعا جدی دیگه الان تموم شد یعنی الان تموم میشه بس خانم آقایون، دختر، خانم آقا پسرا، خودتون دیگه بهتر در جریان لیگ رادیویی پسورده هستید و میدونید که برنده های اولیه ما که از بین 80 نفر انتخاب شدن چهار نفر بودن که شامل دو نفر خانم بودن به نام های الی که یادتون باشه اینجوری خودشو به شما معرفی کرد سلام میکنم، مرسی آقای منافی و تاون دستن در کاران رادیو پسورده بله یکم <تصفح> <تصفح> استرس داریم استرس, استرس گرفته بودش آخه الهی و خانم بعدی سارا خانم بودن به همین ریلکسی که خودتون میشتو ما خیلی ریلکس آره سارا دیشب شروع ریلکسی. کرده من خواستم توجیهش کنم که عزم بیا برو آمریکا بیا برو جای دیگه جای پیشرفت داری؟ شبکه های دیگه آره شبکه های دیگه جم تیوی سی این این فارسیوان <تصفح> ولی نرفتی گوش نمکن همچنان محکم نشسته اینجا و قصد ترک اینجا رو نداره بله البته اینا همه شوخی بود. رقابت خیلی سالم بود اینجا در حد همین کشت و کشتارهای مهربانانه و بعدش بعد از الی و سارا دو نفر از کاراموزهای پسر یعنی از آقای هم آمدند به نام های مهرسا معروف به سیبیل شماره یک سلام برای. به همه پسفردائی ها من مهرسا هستم و یک سلام ویژه به همه دوستانی که در لیگ رادیوی پسفردائی شرکت کردند. درزم در سیبیل پارتی امروز من سیبیل شماره یک هستم <تصفح> و البته سعید که خودش لقب به خودشون میگه دیگه سلام به همه من سعید هستم و خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم که اینجا باشم درزم همه اونایی که مرسا گفت و اینکه من اون سیبیل دومم <تصفح> و که البته سعید ها معروف شد به سعید صداقشنگ خلاصه این بچه ها بودن که اومدن اینجا و هر کدومشون دو سه روزی با ما بودن چقدر هم که بچه های خوب و با صفا و با وفا و دوست داشتنی بودن و ما هم از این تجربه همکاری خیلی کوتاهی که باشون داشتیم واقعا راضی بودیم کلی لذت بردیم. ما قسمت دردناک ماجرا این بود که ما باید از بین این چهار نفر دو نفر رو انتخاب می کردیم و باید انتخاب کنیم تا برای یه مدتی با ما بمونند و دوره کارآموزی رو توی تیم، پسوردده ب ضرونن یعنی تو این مدت این انتخاب دو نفر از بین چهار نفر آقا اصلا کابوس شده بود واسه همه ما یعنی شببا خواب میدیدیم الی اومده میگه من انتخاب نکن من انفجار انتحاریتون طول میکنم سارا مثلا بال دروردده اوددار بالا سرمون رو رازمون رو خونهام می چرغم میگه وای حالت من انتخاب نکنید سعیدو بگو بگوم از تو خواب می گفت یا من انتخاب میکن یا میرم با سپای سایبری حمله نمی همه اکانتاتون هک میکنم. مهسام که همچی با اون سیبیلات وی ها تیزی به دست اومد بود میگه منو انتخاب کن مرم داش. خلاص اینجوری بود که ما البته تسلیم این کابوس ها و خواب های ترسناک به صحنه آرایی های خطرناک نشدیم و با وجود اینکه ها همه عالی بودن، همه خوش فکر بودن، با استعداد بودن، هر کدومشون قابلیت های خاصی داشتن، دو نفر رو انتخاب کردیم که بالاخره تو بعضی از معیارها از دو نفر دیگه خیلی میلیمتری بهتر بودن. اونا هم کسی نیستن. جوز آقا میگم ولش کنیم بیخیال چه کاریه حالا ولش کنیم برنده معنا نداره به خدا همه برندن اینجا و اصلا بیخیال لیگ رادیویی شیم. والا سامی موزیکو برو بالا ولش کنیم الان خوشحالی برای چیه سامی من متوجه نمیشم آها بگم باش ندیگه این دفعه میگم میگم قول میدم میگم الان برنده های نهایی لیگ رادیوی پس فردا عبارتند از کیا, کیا بودن باید سین یه دقیقه کیا بودن بچه برنده ها من کاغذ ها گم کردم به خدا های بابا باست یه ذر موزیک رو بالا من کاغذ برنده ها رو پیدا کنم کجا نمشته بودم این ای بابا هه نه بدونم کشنه بندگان عزیز به علت نقص فنی از اعلام نام برندگان لیگ رادیویی پسفردا معذوریم نه نه نه نه خیلی خواه فاش ندین فاش ندین باشه چرا فوش خیلی بده خیلی حرفای بدی زدین باشه باشه برندگان لیگ رادیویی پسفردا عبارتنده از ای خدا چه کار سختیه خیلی کار سختی عبارتند از عبارتند از الی از ایتالیا چیزی نمیخوای؟ آخه پاریس که خطرناکه مگه نشنیدی چی شده؟ چرا عزیزم؟ ولی ما داریم با ایمنگولاخ سیر سفر میکنیم نه ولی واقعا مرسی از همه چیز خیلی خوش بزرش. خیلی مهمون نواز بودین شما جلال سامی شراگیم که نبو شرمین که نبو <تصفح> ولی کل همه چیز خیلی عالی بود خیلی خوش گذشت مرسی واقعا از دعوتتون و اینکه شما. اگر که حالا من اومدنی شدم که چه بهدار <تصفيق> نیومدنی شدم شما بیان جیم <تصفيق> همین دیگه مرسی و بای برای بعدی سعید از ایتالیا والا ظلام جناب آقای گل به سر هست با توجه به سابقه آکادمی که شما در زمینه موسیقی مدرن با رویکرد به موسیقی تلفیقی و در تقابل با موسیقی سنتی و نقش بسزای تلقین در تلفیق موسیقی مدرن و و پست مدرن پسا ساختار شکر می‌خواستم ازتون درباره ماهیت وجودی این سبک با نیم نگاهی به مکتب فرانکفورت بپرسم. چی شد یهایی مانکن شد؟ آنجل شد؟ نیکو شد؟ خفن شد؟ آروم بخذ اذیت نشی. یو استیو جو. از ایتالیا، سعید ای... سعید از جفتش، ای بابا هر دوم از ایتالیا، حالا اگه ای حرف در ن برامون حتما مثلا جد من ایتالیایی بوده یا چه می‌دونم جلال فامیل داره تو ایتالیا یا سامی مال ایتالیایی فرانسه است. نمیدونم دیگه هر حال به نظر ما سارا و مهرسا <تصفيق> که متاسفانه انتخاب نشدن هم بچه های بسیار با استعدادی بودن حسرت بزرگی ما همیشه این خواهد بود که چرا هر چهار نفر رو نتونستیم سیم نگه داریم پیش خودمون اما به این امیدواریم که بچه هایی به این باهوشی و با استعدادی هر جایی که باشند میتونن راه رو پیدا کنن و موفق باشند همینجا به گروه ایتالیایی ها که شامل سعید و الی باشن تبریک میگیم. و ورودشون رو در آینده نزدیک به جمع تیم رادیو پس بردا پیش ها پیش میگیم که بیا یه کاری کنن یه جوری بهتر کنن اصلا ما بریم از خودمون همچه آدمای بروی هستیم ما ایتالیانو گونیمو هوای معتدل 25 درجه و نه برفی و نه بارونی هر روزم هوای آفتابی و خوب این دایی از استرالیا هر روز زنگ میزنه یا کنار دریا سر آفتاب میگیره یا در حال ما رو هرسی میکنه حالا میگم اینا تو چه تحمولی داری بابا دمت گرم هر روز این همه آدم زنگ میزنه از استرالیا ما داریم اینجا آبجو میخوریم اینجا هوا اله بله بابا نکنید ازیاد نکنید فرشید جون ما رو گناه داره بابا به خدا گناه داره شکار کنم دیگه چکار کنم منم میریزم تو خودم همه اینا رو یعنی یه وسط برنامه یه روز دیدین فرشید گفت آخ آی قلبم خدا این فشار ها یه جای میزنه بیرون دیگه نکنین نکنین راست میگه نکنین وا تو ایران الان چه چجوریه؟ سرده، کجاش سرده؟ حالا این توده هوایی که روی ایرانه از نظر سازمان هواشناسی یه توده هوای گرم محسوب میشه. از جمعه قرار توده هوای سرد بیاد و جای این توده گرم رو بگیره. بعد اون موقع است که تازه می‌فهمی سرما یعنی چی. و ما اینجا چی داریم می‌کشیم؟ نه اینکه فکر کنین حالا 2 درجه قرار سرد بشه ها. نه 15 درجه از شنبه سرد میشه ایران. دیگه حالا یه برف خوبی هم شنبه شنبه داشته باشیم و اینی که ای چاوبرزین هنوز چوگندراتون زیر خاک باغدارین هنوز پرتقال نارنگی ها رو نچیدین یا کندویز هم برو اصل دارین رو شروع کنین دو سه روز بیشتر وقت ندارین وگر نه این همه زحمت کشیدین کلش میشه زرار از ما گفتم بود اگر هم توی شهرها زندگی میکنین دیگه خوب خودتون رو بپوشونین مقاضب باشین که به قول اون سریاله Winter is coming میدونین که چی میگم Winter is coming Game of Thrones رو ندیدین اشکال اونجا, اونجا میگن وینتریز کامین یعنی خلاصه که زمستون داره میاد سلام فرشید جون سلام خیلی مخلصیم آقا اینجا زمینش یخه ها یعنی پاتو میذاری رو این زمین تا مغز استخونت یخ میزنه کجا باور کن ولی همچین که میای بالاتر از زمین هوای ناز 24-5 درجه ولی شناش یخه دوارشون. جات خالی اومدیم وسط صحرا با بارک تنقلات، تنم قلات هم خیلی خالیه سهرا دوبه هم جای همه رو خالی میکنم نمیخوام آقا جان من نمیخوام جای منو خالی کنی آقا بدبختی داریم مقام ما اینجا داریم میلرزیم چه کاری هست بف... فکر سهرای دوبهی و مثلا درجه دمایه مثلا بالای ده پونز درجه بیفتیم نمیخوام اه کما. اون OES نداریم امروز کامان داریم اما بعد از مشخص شدن دیگه برندگان لیگ رادیویمون بریم سراغ موضوع برنامه و برگ دیگه یه از دفتر مدرنیسم ایرانی رو ورق بزنیم دیگه الی و سعید خودتون رو آماده کنین پاشین, پاشین خودتون رو آماده کنین لباس ها رو جمع کنین چمندون رو ببندین دیگه زودی باید بیایینا به جنبیم وقت نیست و بریم سراغ این مدرنیسم ایرانی که هنوز البته به نیمه شم نرسیدیم هفته بعد هم همچنان این دفتر مدرنیسم جلومون باز خواهد بود و دربارش با هم حرف میزنیم هفته دیگه هم اما امروز میخوایم در مورد جای خالی اون چیزهای حرف بزنیم که با اومدن مدرنیسم از زندگی پر پرکشیدن و رفتن میخوایم از تأثیر مدرنیسم روی بعضی سنت‌های خوب صحبت کنیم و یادی بکنیم از اون روزا که هنوز اینترنت و ماهواره و موبایل اینجوری دنیای ما رو تغییر نداده بود. پس یک سلام مخصوص می‌کنیم خدمت همه ی ماما بزرگا و بابا بزرگایی که توی هاشون هنوز بسات و قصه و شعر به راهه به اونایی که هنوز برای خبر گرفتن و اول پرسی از دوستان و بستگانشون بلند میشن و میرن در خونه طرفمیزنن، اونایی که بوسه براشون یه ایکون کوچولوی زرد کارتونی نیست و به جای سنت کردنش تو شبکه های اجتماعی میرن و خیلی مختدرانه اونو با لباشون رو لپ طرف یاله هر جای دیگه یه طرف فرق نمی کنه میکارن و همین دیگه برو می بر این چیز یاد اون قدیما اون قدیم قدیما احبه قدیم هست خوشیرین چون اصل بود میونه مردم این زربون مثل بود از یه گل بخار نمیشه ی با فوک نور نمیشه وسی آشکار چی ترده ترده انتظار نمیشه یه گل شیرون چون اصل بود میونه مردان این درد المزل بود از یه گل بهار نمیشه پیداس فوق یار نمیشه پس عاشق ها هیچ دردی دردی انتظار نمیشه و ما بریم سراغ عناوین امروزمون دلتنگی های دنیای مدرن همه ی روابطی که با زندگی مدرن از دست می دهیم. ام می شماره بدانید و آگاه باشید که همه این جنگولک بازی هایی که زندگی مدرن را انقدر جذاب و شیک و قشنگ و تودل برو رو راحت کرده است. اصلا باعث نه می شود که آدم دلش برای ترکه های خونه آقا جون و حوز سیمانی خونه مامان بزرگ و رفت آمدهای تمام نشدنی دوران پیشا مدرنی و هزار و یک جور سنتی بازی های دوران پارین مدرنی تنگ نشود اما چه سود که همه ما از بسیار مدرن شبندگانی امزاو هنوز هم در مهمانی های شلوخ بلوغ سنتی زن برای تیک تعدیق بیشتر با دیگران تا پای جاند دو الکنندگان رادیو هست فت دا. جان فرما اوت مدرنیته شد خواستم بیا اشاره بکنم به مزاحمت سنتی و مزاحمت های مدر قدیم ما ببید. موقعی که میخوابی دم صبح ماشین میمد و بلنگ داد می‌زد، آهن پاره دمپایی پاره نون خوشیی از خواب بیدار می شدی. الان دیگه مدرن شده مزاحمت شب نربخوااب می‌بینی از همراه اول استMS میاد قایشوی شربت اغلی یک ساعت بعد استMS میاد بهترین سفر با ما بعد فرداشم جادهه که دوباره همون ماشینه با بلگو میاد میگه که اهم پاره دم پای پاره رویش شکسته. بله خیلی ممنون. آقا یه راه داره خب گوشی خاموش کنی وقتی میخوای بخوابی دیگه. خاموش کنی یا سایلند کن صداشو قطع کن. اون اهم پاره و دم پای این اینا اینا, و اینا دیگه مزاحمت هستن. این بخشی از فرهنگ ما. نواشه هستن نگاه هیچ چیز کمه یه وقتی. حال میده به خدا. آقا ما اینجا صدای زبچهداشو داریم هر روز گوش میدیم یه وقتی به یاد وطن. اما جون براتون بگی که با آمدن مدرنیسم ما ها چیزایی زیادی به دست آوردیم. چیزای زیادی رو هم از دست دادیم مثلا قدیما رسم بود فک و فامیل وقت و بی وقت دوره هم جمع می شدن هم نگر می دیدن. گل می گفتن. گل می شنفتن. الان اون دور همی ها جای خودش رو داده به گروه های وایبری و تلگرامی مثلا گروه عمه بلغیس اینا یا گروه مامان و خاله ها مثلا درست کردن دیگه توی وایبر یا تلگرام بعد دید و بازدیدان اینجوری شده که اینور این مثلا امه بلغیس عکس میذاره اونور همه سین میکنن یعنی دیده میشه یا اونور خاله شهناز مینویسه پام درد میکنه بعد اینور هرکی کامنتی میذاریه توصیه میکنه جوریه که فک فامیل یعنی با این که سال به سال هم دیگره نمیبینن ولی توی این گروه های مجازی شب و روز دور همن یا مثلا ها بعد از این مدت که زنگ می‌زدی به بزرگترم اول گله می‌کرد و چرا سر یه صحنه تو دلم برا تنشو دو اینا الان که زنگ می‌زنی گله میکن چرا یه لایک پکسما نمی‌زنی یه چرا فلانجا منشن کرده بودم جواب ندادی آخه کلا همه روابط تو رفت اومده و اینا تغییر کرده دیگه حالا این خوبه یا بده رو ما نمی‌دونیم ولی اینو که رفت و و دید و بازیدای قدیم یه چیز دیگه بود این آیکون بوس و قلبی که مثل نقل و نبات تو این گروه های خانوادگی رد و بدل میشه جای اون بغل کردن ها و بوس های غرس و محکمه ننه جون و آقا جون رو نمیگیره که لب پا آدم رو بادکش میکردن آخه آخه یادشون به خیر این هفته از شما سوال کرده بودیم نظرتون رو در مورد مدرن شدن جامعی مثل جامعه ایران بگین و از تجربیاتتون و از دوروبریاتون در مواجهه با پدیده های مدرن برامون بگین و گفتیم میخوایم بفهمیم بالاخره این مدرنیته به نظر شما به درد این جامعه سنتی ایران خورده یا صرفن شده غوز بالا غوز هفته دیگه هم همین موضوع رو ادامه میدیم و اما ایمیل ما پس فردا ات رادیو های ما مسای و سهصد تلفن های پیامگیر ما دوسف 420, 22, 11, 24, 33 و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف چهارصد بیست که میتونن باش تماس بگیرن شماری وایبر واتسایپ و تلگرام ما دو صفر چهارصد بیست و در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید، عضو بشید و همطور در فیس گوگل پلاس ساند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید و بر کامنت بذارید. الان یعنی جدی میگی سامی؟ باش خب خانمه آقایون نمیدونم اول یادتون هست یا نه اونایی که میتر با رادیو پس بودن یادتون باشه یه شخصیتی تو برنامه داشتیم فکر کنم دو سه سال پیش بود به اسم آقا بیابانی بگو وایس الان پشت خط وایس. به اسم آقا بیابانی خیلی آدام مشتی بودنشون کلا از راه کتک زدن این و اونو و کلا عرق خوری و جالبازی روزگار می‌گذروند همیشه هم مست و پاتیل بود. یه وقت اومد البته یه زنگی به ما می‌زدن الان سامی میگه دوباره ایشون زنگ زده بعد این همه وقت پشت خطه. سامی جان واسش ببینیم آقا بیابانی سلام چطوری شما؟ الو. الو. سلام علیکم. الو. چطوری؟ نفسی میاد و میره میپلکیم. خب ب... آقا میهونی کجا بودیم با کیا بودیم شما تو این مدت خبری نبود ازت. چش درازه. خب بگو برامون چی قصه ای چی با من بودم سرداد سلیمانی، آدی نقده مصطرزایی، اربوینا خیلی بودیم. خود معظمم بود. معظم؟ کدوم معظم؟ مقام معظم رهبری. اما نه اونا رو که بریم سوریه. تو نمیریم به متقدمات، ما تو نخاش نبودیم. وره نگذ دم خون وباشا رسید اومدیم فوق. که یکی کپی یکی راسه یکی که بالاه که پای موشک و کایوشاو مصل جوور شد براشتیم دهب شللی. اولی و ترکندیم به سلامتی رهبر معدمم انقلاب رفتن هوا دو گمی منب کردیم برسه به روه ما مثلا نمیتونی تو جنی ب پا سومی سوممی و اومدیم بریمتی که دیکش کنیم صدداد تاانی شاکی شد و پتیش رو بهبد بالا ماام بردیم بالا گفتین و شلیکن به سلامتی سردار نقدی تو نمیری به مخصسم خلی تو لب شدم. این وان نه کا و نهتو توی تا علوکس یادپجیپکشیدم می رو رفت اومدم تو جی همه فریدات تو نَفَر بعد رو ما جاده رسیدم یه یهو یه, یه دوش عین یعنی. اون ضد ریلی جلوی لطاب شد داد بهم به افتاد تو کانال گفتم الله اکبر گفت قربان الله گفتم وسیكم بتقوا گفت گفتم تفرق و تعالی یک خشب خلی که ثبت ده گفتم والله تفرقوا وارجی که شید تشت طرف ما زباله بعد فرید اون پشت نَفَر بعد که برم و بیام چه سوو که دادم دیدم نه ماشکو ده ما با هم گفتیم رفتیم سوریه از شما بگید رفته آره خوبه آناره عجب بابا داستا الو الو چی شد؟ آقا بیا آقا این هنوز هم این اخلاق بعدش رو ترک نکن. همیشه همینطوری بود این حرف چی که میزنه بدون خدافزی گوشو میذاره برو که رفتی عجب پس ای پرسیدن آقا بیا بانی کجا بوده این مدت باید بگیم رفته بوده سوریه باش ما میگیم رفته سوریه حالا شاید هفته های دیگه هم زنی بزنه بیشتر در جرنه احوالاتش قرار بگیریم دیگه. فریبرز غریب سلام سلام سلام به همگی منم به این دو نفری که انتخاب شدن فرشیجان اجازه بده تبریک بگم ممنونم متشکرم فریبرز از مدرنیسم و استفاده از تکنولوژی مدرن توی ورزش خبر. این چیدا تو ورزش زیاده در ابعاد مختلف مخصوصا توی این چند سال اخیر به طور مثال استفاده از ویدیو تو والیبال و تنیس تکنولوژی جدید گذاشتن تو از خط دروازه تو فوتبال ترفس داوران استفاده از آخرین فناوری‌های های پزشکی در ورزشگاه ها برای نجات جان ورزشکارها و تماشاگر ها عجب تو ایران چی فری س؟ استفاده میشه از اینایی که گفتی لاش نه واسه داور ها هنوز نتونستن ح تهیه کنند که برای ارتباط بین داور وسط با کمک خو و داور چهارم به کار میده یه دونه جلس. آقای فقانی داره که بعضا قرض میده به داوران <تص> <تص> تکنولوژی قرضیه پس <تص> آره آره تازه یه نمونه تازم که دیروز فرشید خبرش رو گفتیم متاسفانه مرگ تصفاوری یه هوادار پرسولیست تو ورزشگاه تختی بود که به دلیل نرسیدن به موقع معمولان اورژانس و آمبولانس که نخش وانت تو بازی کرد دیروز نشد در این زمینه از تکنولوژی های پزشکی واسه جان نجات, این، نجات جان این هوادار استفاده بشه عجب متاسفیم خب فری برز فضا رو کمی تلطیف کنیم یکم آخرین خبر ورزشی هفترم بگو که پرونده این هفته ورزشی رو ببندیم پرونده رو میبندم با انتخابات هیات فوتبال استان گلستان که دیشب خبرش رو پخش کرد برنامه نود با است آقای موسوی یکی از نامزدهای انتخابات به این دلیل که الان میشنویم اعتراض کرده به تخلف در انتخابات پشنویم تخلف وارث شد. بالنماینده تیم دوم بانوان، یه شخصی رو میذارن نماینده تیم دوم بانوان که مجرد منده. آقا نماینده تیم این اداره کلش داره اعتماد میکنه. اصلا تیمی هم ناد. آقا آقا تا شما کجا تیم لیگ یکی کشور داریم بینام بانوان؟ بله این طرف هم مجرد هم مرده با نماینده دوم تیم بانوان. آره وای وای به کجا داری میریم واقعا؟ من دیگه طاقتش ندارم فریبرت. خدافظی کنیم این بحث بیناموسی تماشا بره به کارش بنظاره. خدافی بکنیم تا هفته آینده. تا هفته آینده. When a body touch, a body touch it grill I'ma pull up when she call me Baby you know I don't pull out when we love it Touching, kissing and licking Always leaving your pennies or something else in my crib on my wave I'm shining with this gold grill I could give up how you feel And Everton them on a rail. Take back to don't go back my block My hood and everybody. دوین دین اسکو گون کیپ کیپ شب 100 شی از حضور بدون ویزای ده ها هزار زائر ایرانی در عراق علی رقم های قبلی با مروری بر سرخطی مهمترین خبر خوبی امروز و امشب آغاز می‌نماییم. پایین آمدن قیمت ارز تا حد 3660 تومان به زای هر دلار در آخرین روز کاری این هفته و سوال کارشناسان که اگه این قیمت پایین اومده قیمت بالا رفته چه رقم میشه و اعلام شهر سرت به عنوان پایتخت جدید داعش در لیبی و حیرت ناظران از اینکه پیشرفت این, پیش این داهشیا از پیشرفت قوم مغلم سریعتر داره اتفاق میفته و ایتاوی یک هدیه ویژه سوی نخست وزیر مجارستان به رئیس جمهور ایران و گومامزنی‌ها در این باره که خدا کنه وقتیشون وقت ایشون عرق مجاری لیکوری چیزی نبرده باشه برای آقای روحانی دوباره این دلواپسا را بیوفتن تو خیابون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکابرم بلبل. بل. سلام بنا گزارش سایت گاردتا وون ایتالیا در دیدار فوتبال سوپرجامی کشور موریتانی محمد عبدالعزیز رئیس جمهور این کشور که برای تماشای این بازی و ورزشگاه محل دیدار دو تیم توراغ زینا و ای سی اسکسار درست خوندم این را آقای میکروفون تلا شوالا خونه نمیدونم خودم لیگ برتر موریتانی رو دیگه پیگیری نمی کنم خیلی بخون بله برز پوزرش رئیس جمهور این کشور که برای تماشای این بازی به برزرشگاه محل برگزاری دیدار دو تیم توراق زینا و ای سی اسکسار رفته بود دست به اقدامی عجیب زد و پس از اینکه در دقیقه 63 تا سه بازی حوصلش رفت. در حالی که این دیدار با نتیجه تصاوی بر یک دنبال میشد دستور توقف بازی را داد تا با زدان ضربات پنالتی نتیجه بازی مشخص شود. در رابطه یکی از کاشناسان ورزشی کشور از اینکه مقام معظم رهبری و سایر مقامات روحانی کشور ما علاقه ای به حضور در ورزشگاه ها ندارند ابراز خوشحالی کرده چون در این صورت هیچ بعید نبود که این عزیزان در هنگام بازی، من شدن یا تکل از پشت بازیکنان را حرام اعلام کرده بازیکن خاطی را به جای کارت زرد و قرمز با حد شرعی مجازات کنند پایان مشروع اخبار. ای بله. همانطور که در خبرها و شنیده اید در مرز مهران تجمع و فشار ظاهران عربینی منجر به آسیب زدن به چندتن از مرزبانان عراقی و همچنین تخریب مرزبانی شده و هموطنان عزیزمان به این طریق راه خودشون رو به سمت کربلا باز کردن به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واید غیرمرکزی خبر به مرز مهران رفته تا ما را در جریان جزیات این خبر ای قرار دهد. همکار گرامی اگر صدای بندر رو دارید بفرمایید الان دقیقا چه خبر اونجا؟ کجا هستی چون؟ الو؟ الو. الو؟ الو؟ بله همکار گرامی من الان پشت مرد مهران هستم و مردوان هستم و دوباره ب... مرد رو بستم بروی زاهران همکار گرامی همکار گرامی چقدر زاهر اونجا هست الان؟ همکار گرامی من هم وسط جمعیتم و متاسفانه نمیشه شما ولی چند هزار نفری هستن این شامل مرد و زن و بچه و پیر و جوانه فال یارمی خب همکار یارمی الان تکلیف آه. چیه ما که بسته‌ص خب چیکار کنید شما حالا همکار یارمی جمعیت اظهاران تصمیم داره با فشاری که داره وارد کنه ما دوباره با. داره مزوانی رو بکنه یا همکار گرامی جرامی. چیز یعنی این فشاری که در صدای بجان... شما آقا آخه... در این فشاری که در صدای شما شنیده میشه یعنی به همین خاطری همکار گرامی همکاری گرامی هم همه باید فشار بدن حتی برزی میگن میگنیم فشار خیلی هم ثواب داره فشار نیده بودیم تا شو شو ثواب داشته باشی آه. همکار گرامی آیا درسته که اکثر زاهرانی که اونجا هستن ویزا ندارن و همینجوری بدون ویزا میخوان وارد بشن؟ بله همکاری هم ای گرامی من اینجا هست هر کسی که ویزا داره یا نه میگه همکار گرامی من فکر کنم پشار های جمعی هست داره جواب میده و دروازه مرزبانی داره میشتنه های آ... های های های های همکار گرامی آخه یعنی چی بای نمیشه که اینجوری که هلو همکار گرامی هستی همکار گرامی چی شو دروازه داره باز میشه و من به امرهی ندریز هست آجی جان الان میرم دیگه طلبی بابا بدون ویزا میرم میگیرن پدرتو در میارن الو الو الو همکار گرمی آلو, آلو, آلو, آلو, الو آقا فشار بده آقا فشار فشار والا فشار دیگه باقی مونده فشار چی... چیو فشار بده عجب فشار بله بوتاش انکورا از فشار چیز بو تشکرت توجه شما تا شب دیگه و برنامه دیگر خدا نگهدار نگاه کنی پسره آخر به باد نداد شور حسینی برش داشته من ما چی میگی؟ شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید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 ما مرز نمی شناسیم ما عاشقان عبوری و مرز و مرز بامی اگر برای بزدلام زاهرنما مان است برای ما خاطری بیش نیست بشتابید ای لشکریان مرز گریز ای دلنوران مرز بان ستیز دست حق به همراهتان بشتابید کرب و بلا نزدیک است نیته یعنی اینکه که بعد از پنج سال اندروید دو من دو هفته است که به آیفون 6 از دست پیدا کردم و الان اپلیکیشن دارم و میتونم برای شما پیغام بذارم بح یوهو بح مرسی خیلی عالی بهترین کارو کردین بهترین مدرنیسم میانیم که بچه بودیم فقط مادر بزرگ پدر بزرگای خیلی سن و سالدار میتونستن از قدیم متفاوتش با روزگار نو حرف بزنن یعنی اوضاع دنیا تا همین 20-30 سال پیش اونقدی سریع تغییر نکرده بود که پدر مادرای ما حتی حرفی برای گفتن از قدیم متفاوتش با دنیای جدید داشته باشن اما این تکنولوژی مخصوصا از نوع رایانه کاری کرده ما الان بخوایم با یکی ده 15 سال از ما کوچیک‌تر معاشرت کنیم یه عالمه اصطلاح فنی باید بلد باشیم من یکی اگه قرار باشه دلم برای یه چیزی در دوران قدیم نه خیلی قدیمی همین 10 سال پیش تنگ بشه دلم برای های بدون موبایل و آیپد و آیپاد و هرچی با آی و بی آی تنگ میشه یعنی آدم زنگ بزنه همه دوستور رفیقاش بیان تو این هوای ملس یه آش گرم بپزه بذار وسط بشینن به علان این کار رو بکنی حتما موبایل یکی اون وسط میفته تو دیک باقی میزنن زیر خنده موبایل ها رو برمیدارن به فیلم گرفتن والا نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشن کاملان ملک موتی سلام سلام رشید جان سلام همگی چه خبر ها کجاهایی؟ خوب کم کم داریم آره به پایان ایام سوگوارگی تو ایران نزدیک میشیم هنوز غیر از چند تا کنسرت که تاریخش اعلام شده بازار اجراهای موسیقی داغ نشده اما تو زمینه سینما باید بگم دیروز به یه فیلم کمدی البته در حوزه کودک و نوجوان مجوز دادن برای اکران به اسم بچگی تو فراموش نکن به کارگردانی جلال فاطمی. نقشی از اونم سینما بشتویم تا بعدا من بیشتر توضیح بدم. بشنبی. یک فیلم برای همه اعضای آزاره خانمها شیر و بامزه. اگر میخوای خواستگاری و عروسی عجیب و قریب ببینی باید باد. که فراموش نکن. اونقدر نیم قسط گرفت روز بشه. یک یک متفاوت. یک دنیا و یه شیر. باشم اون هنوز و بر اسب که وارد نیستن اومبران گپ. آقا دست دست با خونه ودمون ول یا نه؟ اگر میخوای شهاد باشی خودش. باد. که فراموش نکن. بله بخشی از صدای آنونس فیلم و تو فراموش نکنه شنیدیم با کارگردانی جلال فاطمی و صدای بهمن حاشمی از کی نمایشش شروع میشه کامرا؟ فیلم از پنشنبه نمایش شروع میشه فردا پس فردا و اصلی هم اکفر عبدی فرهاده و ایش به و بهنام تشکر و مفیدی هستن حالا هوایی سیدم جوریه که بزرگ ساله هم میتونم برن فیلم رو ببینن بسیار خوب امروز کاملا تو خبرها آمده بود که یقما گل دستگیر شده ماجراش چیه؟ چنانقدر یه دفعه ناگهانی؟ والا خیلی هم ناگهانی نبود از یک سال پیش به خاطر شهرای شعرای توسط متوسط نجفی نجفین پروژه کلیک خورده بود سایتای رو هم تو خبرگزاریای توند از جمله باشگاه خبرنگاران جوان خیلی دنبال دستگیری یغما گلرویی بودن تا دیروز بالاخره مامورای امنیتی میرزن تو خونش رو بعد از بازرسیای مفصل اونو میبرن به جایی که هنوز معلوم نیست کجاست هنوز رسما جرم یا جرماش اعلام نشده باید خود صاحب کنیم ببینیم چی بوده عجب امیدونیم که زودتر خبری بشه ازش و زودتر آزاد بشه ممنونم ازت کامران عزیز باید خدافزی میکنیم تا هفته ای آینده تا هفته آینده خداییم از کاره شاهین نجفی رو داریم میشنویم رانندگی در مستی که شعرش از یقما گلیم نده شوری شغلی که برایت میرسه نادام حساب او زاویه مسدرده حافظه نمونش همونمونی که کش و رازیه مثلی که سر سپرده ی حجر شده پسر عزیز گل من چه مشکلی داره بگو ما برایت حل کنیم دیگه. بگو دادی من دارم از تنهایی میمیرم بابا دادی چرا؟ خس... ما به قربان شما بگردیم اه اه اه عزیز دل بابا بیا توی بغله بابا ما از تنهایی درت میاریم خب یک جوری که اصلا یادت بره تنهایی چی هست؟ نه بابا بیخیال تنهایی اونجوری که نه بابا دادی اندی تنهایی اینجوری دیگه تنهایی تنهایی دیگه اینجور آنجور بابا ازدواج و زن و این حرفا دیگه اون که تنهای به حساب نمیاد عزیزه بابا تنهای تنهایی یعنی که مثلا ما به خلاک می رویم تنهایی می رویم ای بابا دادی یعنی... تو دردهایی منو اصلا جدی نمیگیری هیچ وقت دوستت ندارم اصلا دادی یعنی چه ای دل بابا بگو عزیزم بیا بیا این آلبوم سیغه خودمون را آه. بیاوریم شما ببینید دلت بازشم خیلی ممنون بازش. دادی واقعا که بابا نمیخوام بازاره بله. بابا ما اه. چه کار بکنیم دیگه میخوای از این به بعد با هم بریم دست به آب که شما تنهایی بهت کچار نیاره میخوای دادی بابا غلط کردم درده دل کردم پیش دیگه یه زن خوستی واسه ما بگیری نمیخوام اصلا دلش خیلی خیرات فراوانی هم برای داماد هست هم برای پدر داماد خوب بگو ببینیم کیون میخوای شما عزیز دل بابا اه. بگو ببینم بابا ببینی بله. دادی آخه من یه دختری رو میخوام که کم توقع باشه مگه برد. ما اون دفعه دختر سردار خوشحال زاده رو در نظر نگرفتیم شما نخواستی بابا اون که میگفت من بعد از زفاجم هم جلوی تو چادرم رو بر نمیدارم آخه این چه بده چه دردیم اشکال نداره که اه. اتفاقا با چادر به شواب هم نزدیک تره دکه نه خیلی دادی نه اونو بابا این دختر سردار تجدد زاده را بگیرم براش متاسفانه چادر نداره ولی باباش مال منال خوب داره دادی به نظرت چطوره چطور دختری تو دیدیش دادی؟ بله بله دختره بسیار شایسته و خوبی به نظر میاد. البته بیشتر به خود سردور تجدد زاده نظر داریم تا خود دخترها. ولی خب دادی ببی بله. های این دوره زمونه خرج داره. ها. دادی بله دی... باید به من کمک کنی. من واسه زنم کم نمیذارم. ما گفته باشه بله هر کمک فکری و معنوی که لازم باشه در خدمت شما هستم. بفرمایید. کمک فکری بله. نمیخوام. دادی اون واحد دوبلکس تو بولک فرمانیه رو میخوام هم از یه دبل می او باشه. میخوام زن بگیری او پدرت اترو بات مگر سفارشات بودرگان را در مورد ساده زیستی نمیدانی؟ نه نه, نه تو ابن مایی چی چی دادی؟ پسر مایی فزند بند مایی از نطفه قدسی ما شکل گرفته ای آره، آره، نماید انقدر دیگه. دنبال مال این دنیا ما باشه خب, خب ببین دادی اندی اگه واحد فرمانی مال دنیا است خب بدش من شما که ما تو نیاورون و قلحک و زفرانیه و فلانه بیستا دیگه از این مالها داری دیگه از این مال دنیا ها لا بعد حالا با عاطف پدرانه ما بازی کن ها چکارکن نگ سگ خورد؟ اگر دختر همین سردار تجددزاده را بگیریون واحد دو خابه‌ی برج فرشته را میدیم به تو دیگه یعنی دست دختر مردمو برداد... بگیرم بیارم برد... تو سوراخ موش ددی سوراخ موش کجا بود صد هشتاد خانه دیگه چون میخاید ددی متاسفم یعنی من اصلا نزم میخوام نزم میگیرم اح نزم اح. اه واقعا ازت ناامید شدم ددی اندی در ناامیدی بسی امید از پسر امیدت به خدا اجاب... باشه بچه‌ی آدمم خود از آدم ها علام از روی اون سندلی نمای ما بلند شما بشینی بیا دادی بیا من بیرم اجازه کنمون اغید بشین سندلی با با تفادل <سؤال> تفادل علو سلام عزیزم یه دقیقه گوشی رو نگه یه دقیقه گوشی رو نگه یعنی بمولتر از این سندلی ها ما ندیدی خیلی پایین نرو دیگه بیایه های بیا بالا بیا بالا آن اینجا این دوشت ما بیا بالا که خوب نمونه. ای صندلی سندلیه بمولیه تفضل تا چشم کنی سطح دریایی هرچی که میبینیم دوروبرمون ها نیهیم داری توی رویاییم من و تو تنها که نیست مثل مونی جا مثل دیوونه شب میرخزیم تا خود سو خودتو تو نزدی کنیم چورری یی دیسکوون دامن کم لباسه شیک و اون هم هست همه دوست ستان ما است پایپشن پچره واسه دی بدهنده اند اند د لایتس اف وادم شب دل بگردات همه چی فنجفت فنجفت فنجفت دخترامون همی به فکر شک ما بال داریم زقوارو گردونیم همه واسه پام سر بلا سر توین زیر لایک ساب تو از یو بیم پش بینچ بسات تو خم کن ساب تو گم شو هر جو میچ کنم شبونه تو مرزرت کن اگه بخو پیش بری اگه بیشتر منو هوایش خب کنی با این وضع یاد دنیای مدرن روی دوستیا ها هم خیلی تأثیر گذاشته قدیم ما میخواستم بگن دو نفر خیلی با هم دوستن میگفتن که رفیق گرما با گلستان هم هستن یعنی هم با هم میرن هموم هم با هم میرن گشت و گذار یعنی کللا با هم با قدیم ها هموم عموم هم عمومی بود مثل الان نبود در خونه برای خودش مثلا دوش و اینا داشته باشه اینه که رففق و معمولا با هم همون هم, هم میرفتن خلاصه بازی هم میکردن بیرونم میره الان زمان عوض شد بگی دو نفر با هم میرن همون هم چپ چپ می میکد دیدین بعضی از این دوستایی که مثلا از زیر دوش و توی وان و اینجور جور جاها به ما زنگ میزنن؟ دیدین دیگه اینا در اصل میخوان یاد اون قدیم قدیمو زنده کنن منظوری ندارین اینه هدفشون حالا از بحثمون دور نرفتیم اینو میخواستم بگم که قدیما رفیق یه چیز فیزیکی بود یعنی میشد بهش دست زد تو همون پشتشو کیسه کشید زد رو شونهش باهاش کشتی گرفت به خاطرش دعوا کرد کتک زد کتک خورد الان دیگه خبران نیست که ملت با یه کلیک درخواست دوستی میدن با یک کلیک accept میکنن با همون یک کلیک هم میزنن همدیگه بلاک میکنن پدر هم دیگه در میاره آدمای دیگه مثل قدیم با هم رفیق نمیشن فرند میشن در حال دیگه اینم وضعیت رفاقت و دوستی توی دنیای مدرن دیگه پغلاده قلنانده... پیش خون روزنامه اعتماد از قول ولیولای سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز تیت زده بود که وضع دولار است. بل کلن وضع دلار همیشه طبیعیه چون موقع که هزار تومان بود چه الان این ماهیم غیر طبیعیم دلار بند خود گناه گناهی نکده شده سه هزار و هفصد و تقریبا تمامی روزنامه های صبح امروز از قول سردار سلیمانی تیت زده بودن دشت ها و کوه ها را برای شهادت پیمودم. سردار جان دعونمون کردی به خدا ولی شهادت میخواه فقط خط مقدم دشت و کوه و ستات فرمانده ای اون پس پشتایینا شهادت پیدا نمیشه آره همونطور که گفتیم یغ گلرویی ترانه سرما هم دیروز بازداشت شده زمینه که الان چندی روز از بازداشت و زندانی شدن روزنامهنگارانی چون ایساس هرخی احسان مازندرانی سامان سفرزایی آفرین چیت و هادی هیداریی هم میگذره و ظاهرا خبری هم از آزادی هیچ کدوم از اونها نیست. به قول شامرووی بزرگ پس پشت مردمکان فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برامماسیده گل سرخی پرتاب می کند. ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی به دهکار آفتاب نیست نگاه از صدای تو ایمن می شود چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی شبتون خوش و آرزوی آزادی داریم برای همه دربند رفتگان مظلوم خوش حالو شد و خندونیم با اینکه توی زندونیم راه مابسته، پای ما خسته، اما آتش می‌سوزونیم. ما نسل پر دستامونو به هم دادی، ترقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادی. تو یه زندونیم، دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم هنچر پنجر میشیم شر راه‌های میخونیم. مناسله بره فریادی، دستمونو به هم داد.